ان شاء الله و آخرین که به این در و ما به حضرات اخباری ها گفتن و از زواهر رو حجت می کنن ادراق خصوص زواهر کتاب حتی زواهر سنت رو هم حبارت شد مختلفه برده اون رو هم حجت می کنن از سنت اون که از خیلنبر منصول مدمر بوده و بعضی ها گفتن حتی سنت رو هم باید ترسط فعیمه ترسیر بشه حالا ما اون بخش کتابش رو متعرض میشیم. عرض کردن ممکنه به از از عدلش رو شامل سنت هم بشیم. راجع به مسئله یه کتاب یه توضیح تاریخی رو اجمالا عرض کردیم. دیوش رو کردیم. رای به آیات مبارکه و نظیر آزاد اپتدایم در مکه مکرمه و در مدینه به ناشتار که مکی بیشتر نظر به عقاید و اصول اولیه و مسائل معاب اینهاست و آیات مدنی مشترک بر احکام و تشریعات و قوانین این قسمت‌ها راجعه به خود لفظ قرآن و عبایر قرآنی معنی از مسائل در خود قرآن هست مثلا هرسون راجب به جهاز تفسیر اون نفعه از کردم یک آیه که ایشون فرمده فقط همون یک آیه ماده تفسیر در قرآن یک بار بیشتر به کار بردنش احسان تفسیره راجب مطلبی که در قرآن به کار برده شده به خود قرآن یک تفسیموندی آیاته یعنی آیات قرآن به دو صورت قرار داده شده یک درد آیات به عنوان محکمات و یک درد آیات به صورت متشابهات ما غیر از این تقسیم بندی که در خود قرآن آمده فعلا جایی رو در قرآن دیگه سراب نداریم یه تقسیم بندی های دیگری بعدها شده از صحابه شده از انهی رو شده در روايات آمده که قرآن ناسخ و منسوخان آمان و خواست رو بر برمقدم و معد و ظاهران الاخره اما در خود آیات مبارکه این یه جا شده و این مورد هم که در آیه مبارد آمده مسلم به لحاظ تاریخی کاملا تاریخش واضحه در سال دهم همه هجره بعد از اینکه پیمان برای از مکه برداشتن از سفر هجره توی بدا گروهی از طرف نصارا نصارا و مسیحیخ های نجران نجران مدرهی سینه در جنوب هجاز بین هجاز و یمن واقع میشه الان هم هست همین اسم نجران در اون مقدار زیادی اسماعیلی هستن اسماعیلی های مخره شده دام ما کی روایت هستن از شما حضور چون که اونجا اون, اون منطقه محل نصارا بود من در تقسیم بندی عربیان عرض کردم در جزیره العرب بطور و کلی ما سراغ مجوس نداری رسولا اهل مکه و مدینه با افکار مجوس یا زردشتی ها آشنا نبودن چون به اصطلاح کل جزیره خوش بود، و قسمت تندترش که یمن بود، از طرف پادشاه ایران استادار کل مملکت اونجا بود، والی به اصطلاح در یمن. ایده از, از اینها مجوسی بودن، یعنی ایرانی‌هایی که به عنوان بخش سیاسی در یمن بودن، اینها زردشتی بودن، اینکه در حیضی ما در خبر نداریم. مفتی هم یه نادری در مکه خبر داریم و بیشتر نجران بودن در نجران مسیحی بودن باز در خود مکه نبودن یهودی ها هم باز در مکه نبودن یهود در به اصطلاح مدینه بود شما اگر نقشه نرافیه از طرف مدینه و اون طرف مدینه خیبر و خدر بریم به طرف شما تا به فلسطین فعلی برسیم تو این مناطق توی خود مدینه و مناطق وسط هم یهود بودن ما بین مدینه تا همین شام به سالانو میریم خب بزرگي بزرگیست این اصطلاح هم واضی القرآن می گفن واضی القرآن اینجاست ما بین مدینه و شام یعنی سحرایی سه ده دهده روستا روستا بود اینجا از این روستاها يهودي بودن باز در مدينه مکه هم ما یهودی نداشتیم این ترکیب وقت مؤزم اهل مکه و مدار زیادی از مدینه و اشاعيري که ما بین مکه و مدینه و از غاق مکه بودن اینجا طرف یمن بودن. و ارز کدم کرارن در قرآن کریم مشرق اصولا در قبال اهل کتاب درم یک خونه نظرین کافر و كفر مطلقه من اهل کتاب و مشرقی اهل کتاب مسلما یه بود و بودن حالا ظاهرا در دوشتیه ها هم باشن آیین مبارکه توش مدیوز آمده اما این نظر به کتاب می حالا اون چهرش نیم خواهد باشن در از که نصارای نجران که دارای تشکیلات معلوم میشه که در اون زمان هم اینها در تشکیلات دنیا مسیریت نسبتا رتفه بالایی داشتن به نظرم نیاز تعدیر نشده به نظرم رتفه کاردینالی قبل از پا به نظرم در نجران ساکن بوده در دو تا از رتفه هاشون ظاهرم من شون رتفه عربی زیر شده آقل و سید در این اصطلاحه دیگه کاردینال میگن شاید چیزی نظره چون خیلی درگاهاشون نیستن به در رتف جمعه مسیریه یه چیزی رسوه بالا دو نفر با 16 نفر ساده نفر که کشی شدن رسوهاشون پاییم تر بود آمدن برای مناظره با الله حتی با این دوره که یه دونه ناخوز هم با خودشون رو حضور که ناخوز میدن وقتی به اول خودشون عبادتشون نمازشون. و وقتی هم وارد مدینه شدن په چیزی نتا هموندن به امه حوانی خاص خودشون حتی ناغوز رو تو مسجد پیغمبر این فضای فارغ هست خالی تو مسجد پیغمبر نحسی کردن که حتی مسلمان ها رو پیغمبر رو همین آخه این خیلی قوله از ما فضای فارغ ناغوز رو لاغر از مسجد برن بیون پیغم رو نهش کنند و این مسئله مباحله معروف تشینید این مقدماتش این بعد از سفر حجت و انجام شد بعد از اینکه پیغمبر رو مکی برگشتن در سال ده هجری, اواخر سال ده هجری. این مناظره واقع شد این بحث واقع شد آمدن برای بحث با رسول الله که این آیات مبارکه سوره آل امران بنابر قولی تا شهل آیه جزبه آیاتیز که یک جا نازل شد و بنابر قولی هشتادو خورده آیه و قولی هم گفته شده کل سوری آل امران هشتادو خورده یک نازل شد وقت در آیه حقسش حرفی که من میگم به حسب ای این شماره ها یعنی بحثی ها از خود شماره گذاری آیات بهلن واردون بحث نمیشه. اگه در خلال بحث دیگه شما توضیح ارزش میکنه. به آیه 7 خود انزل الیک الکتاب. البته آیه با اسوره مبارکه با توبیت شروع میشه. ال رحم می الله لا اله الا الله هو الحي القيوم. حالا یه چند دیگاره که تقریباً اکثر به وجه اینکه بحثهای مناظره اهل کتابی که ما داریم بین عذالیا مثلا با اینکه در آیات قرضی خدا همونه که این شبه مریم همون روش شدن به رسول نبی اکرم بعد از احمد پیغمبر از این راه وازع بحث نشدن اصلا زمینه بحث رو یعنی در آیات سوره امران که انسان دقت می‌کنه پیغمبر نمی‌واد ظاهرا این جدال انگیزه یعنی میگه مثلا این نسخه اینجوری ما قبول نداریم یعنی نسخه قرائت دیگری رو اون مقدار حالت جدال داشت که فعلا بر از اون وارد نشدن برای اثبات حقانیت خودشون از توحید وارد شدن خود توحید و تأمل در حقیقت توحید که منجر به نبوت میشه و اون نبوت منجر به حقانیت ایشان میشه خیلی یک روش استدلال خاصی در سوی آل اعما یک نحوه خاصی استدلال غیر از این که ما برسه انجام در آیه هفتم هو الذی انزل الایکه کتاب این ها و محکمات و نعمل کتاب و اخرامتشابه ها این تعبیری که آیات قرآن دو دسته شده در سال دهم ده چیزی در حدود شهست روز تقریبا قبل از به پیغمبر ارسن این مطلب گفته شد که یه تقریبا معظم کتاب تا وقت نازل شده بود این تقسیم بندی این وح آمده حالا من چرا این نقطه اینجا ارس کرده که یه بحثی شده در خرق بین محکم من اول یک تاریخ که بخواهم برد برد برد بشیم نسبت داده شده من تو علمای شیعه که نگیدم نسبت داده شده بعض از علمای اهلسون نه که گفتم نه کتاب کلوه او محکم و به بعضی ها نسبت داده شده که کتاب کلوه او متشابه ظاهر آیه که بعض و بعض من ها آیات محکم ها این چرا این نسبت داده شده چون در یک جایی در سوره بود اول سوره بود بسم الله الرحمن الرحیم از لام را کتاب ال او که متن آیات بود ثم فصلت فصلت من لدنه حکیم الخبیر تکون واقع است و بالاخره در قرائت‌های این آیه امواره که درام تمام کتاب محکم و باز در سوره زمر که احتمالا این آیه امواره که در مکه نازل شده باشه روز آیات مکیه باشه در صورت زمن اللهم از زلعه حسن الحدیث کتابا متشابه هم من تخشه رومن حضوروز لدین آخر اینجا ظاهرش ای که تمام قرآن متشابه هست یعنی یک آیه ظاهرش اینه که تمام قرآن متشابه هست یک آیه ظاهرش اینه که تمام قرآن محکم یک آیه هم تقسیم بندیه این من از اینجا بحثش شروع میکنم که این تقسیم بندی آیا اساسا سابقه شوشم بشه تما این که آیه دیگه داریم که با سفران خود صورت و انزل ناعله کل کتاب لتو بیین لناس ما نوزل ظاهر این آیه اینواره که این هست که اصولاً کتاب برای بیانه و انزل ناعله کل کتاب لتو بیین لناس ما اینه هایش رو ذهنم بود اون دو ساب مرده که آدرستم واضحه اون یکی شناس رو ذهنم بیست نه نه سوره نه انزلنا علیکل الكتاب لتو بیلن ما نزل علیه که اینجا البته آیی مغارکم جمع بین تنزیل و انزال شده و انزلنا علیکل الكتاب لتو لهم ما نزل علیه یعنی این بحثی رو هم بعدها بین اصولین بین مفسرین بین علماء ایجاد شد که ما چیجور این بندی محکم و متشابه رو چیجور ببینیم حالا اینشالا بعد من واضع دست میشم ظاهر این آیه مبارکه چون بعد مهم واضع بحث مستشابه بشیم منم یک کلیاتی رو میگم بعد واضع بحثش میشیم این زواقه رو اچزا هم دهید. اون آیه مبارکه که ای کتاب و احتمت توش انزال و تنزیل نداره یعنی احتمالاً میخوره مرحله قبل از تنزیل که معانی و قرآنی و مفاهیم قرآنی مخازن بسیار و عالی و محکم است ثم فصلت به جای تنزیل فصلت آمده یعنی جدا شده کتاب ونح از آیات ثم فصلت من لدُن حکیم خبیر بعدش هم ثبته انزال نداره اما افتداعنه از هزن تا بعد به دیگریش مسئله بعد در اون که کل کتاب مهموت شابه آمده الله و نزل احسان حدیث اونجا تأدیر به تنزیل شده کتابا متشابه هم کل کتاب متشابه قرار داده شده یک مسانی هم بعدش آمده این مسانی رو جوری مختلف معنا مثلا توش احکام هست توش مواعظم هست توش مثلا آیات قیامت هست عقاید هست اخلاق هست مثلا اینجوری احتمال داره که متشابه به معنای همسان همگون به توی فارسی یک کتابی که همسانه متشابه همسان و همگون و در این دوگانگی یعنی دو با دوتایی بودنش با دوگانگیش همسانه این در اونجا نزله هست و بعد از متشابه هم مخانی هست در سوره آل امران انزله هست اولا در یه انزله عالی. نزله نزله انزله اینجا داره منهایات و محتماد و ام و کتاب و اخر و متشابه ها اینجا این تقسیم بندی این تقسیم بندی که قرآن به دو صورت هست محتم و متشابه در این زمانه آیا ممکن است این تناقض به حسب ظاهر اختلاف رو به زمان عوض بکنیم؟ مثلا بگیم در اول در مکه کتاب به عنوان کتاب همسان و هنگون و یک نواخ به اصطلاح ما توصیف شده. بعدها در مکه، در مدینه در سالهای آخر، یکی دو ماه قبل از رحلت زهرا بر اکرم صلی الله, سهات الله این تقسیم آمد در مجموعه آیات یا ممکن است بگیم مخاطب عوض شده یعنی مخاطب اولی مؤمنین بودن در اینجا مخاطب اهل کتاب و نصارا هستن و این یک نحوه مخاطبه هست اینو یعنی خداوند متعال به،, به مؤمنین یک نواخ صحبت کنه همه به قرآن بیان و سو بیان میتونه اما وقتی با اهل کتاب مهاجم میکنه مناظره میکنه میگه شما حق نداری بس اون مسئله پارسی هسته ریون للمسلی بخوا خب، تمسط ریون للمسلی نکنیم الگین هاون پی سلات امساون بعدشه مثل لا تقرب و اون نکنه لا تقرب و سلات برانتون سکارا مثلا اینها در اون مرحله بودن که به بعضی از آیا تمسط می برای خدشه بر رسول الله هدف رسول الله این بود که بگه شما باید دقت بکنید بعضی از آیات کتاب محکمات هستند و کتابن الکتاب هستند هم متشابهات هستند دقت بکنید بعضی‌ها هم متشابهات هستند شما حق ندارید با اون متشابهات وارد بحث بشید این اصل این مطلب باید اول روشن بشه چرا بعضی از آیات قرآن رو کلا محکم گرفته بعضی کلا متشابه گرفته و بعضی از آیات اومدن ما مراجع به قرآن که متشابه و محکم داره غیر از این آیه جای نداره منحصره در یک آیه واحده تعمل بکنم که مخاطبه هست با مسیحی ها من معتقدم لحن کتاب و طرف مخاطب رو با حساب مخاطب رو حساب کرد در این آیه واحده ما جدیم نداریم. تو این آیه واحده مخاطب اهل کتاب مسیحی اون در این ای که خدا با اونها میفرماید فرماید انزل علیکل کتاب من و محکمات اینجا این تقسیم بندی شده. هن ام کتاب و اخرا این یک بحثی چون ما بنا وارد من اول فقط به قول معروف اون ترسیم کلیه بحث بکنم که بعدم اگه میخواستم مراجعه کنم بدونم به چه آیاتی بدن کجا باید مراجعه کنم. حالا نمی شید. کی اول من هم جواب ندادم فقط طرح من دوم مسئله دوم خود لحظه متشابه کار نداریم به معناش چون معانی زیادی من رو بزن حدود سی معنانه ما را را چه این که سی تا نبود نزم. ده خونزه تا ده نوزه تا ده نوزه ما معنانه من رو مای علامه بزن شاش مثلا با احتمالاتی که این برورت سی تا بیست به نظرم ده خونزه تا بیشتر نبود آلا بازم در یه چازگی می آسیم دیشتر یا خریشتر نگاه کنم بازم به نظرم علاین بلا اشکال چه در کتب اهل سنت در تفسیر و چه در کتب و حصول راجع به متشابه احتمالاتی دادن که کار... بعد عرض می کنن اونی الان من اینجا بخواب بررسی بکنم این کلمه خود تشابه به عنوان لغوی حالا کار به این در اینجا به چه معناست نداری تشابه به حسب قائدشون از ماده شبهه یه چیزی کبیه دیگری باشه لاعقل اقل مثلا در حد ظاهری صفات ظاهری مثلا من با مثال حالا ظاهری صفات به باطنی اوصاف ذاتیات یک چیزی باید ماده شدهی باشه اینا من کلام چون باب تفاؤل آمده تشابه باب تفاؤل هم که معروف است به حالت در لغت عرب یک هیعتی است که برای به اصطلاح صدور فعل از دو نفر در حال صدور فعل به این حیط قرار داده شده چون ما سابقاً چران ارز معانی متعدد رو در لغات مختلف گاهی به حیاط میگن گاهی به مواد میگن خود مثلا زر رو در نظر بگیرید این اگر بینی یک نفر باشه میگه بره به مثل مثلا امرن اگه یک نفر باشه او رو بین دو نفر باشه در لوقت عرب اینطور که ادعای انصراف شده اینجور شده که اگر دو نفر رو در این مقامه که نشون بده این ضرب از یک طرف واقع شد به دیگری و از دیگری هم اکسال عمل نشون دار بقیق بکنیم از یک طرف واقع شد به دیگری دیگری هم عکس عمل نشون دار برورت کرد میگن اینجا رو باب مفاعله میذارن. اگر بختم غارب زیدون امرن این نیست که هر دو همه دیگه دردن. میخواد بگه مثلا فرسنه اول جناب زید زد تو بوچه امر امرم بعد تو بوچه زیده. یک حالت دو طرفی که مبدعش رو یک طرف کرد. اون مبدع بوده. اون اول کار بوده. اول کار زید بوده. اون بود. اما گاهی اوقات همین حالت بین طرف این رو کار به اول ندارد. میخوان این حیعت رو توصیف بکنن. هی که طرفین دارن همدیگه رو می‌زنن این تو سر میذاره اون هیئتی که از زدن هر دو پیدا میشه اگر اون باشه میگن ثوارده میگن ثوارده زیدون و عمرو این ثوارده زیدون و عمرو مثلا همین رو ما در لغت فارسی ماده داره می‌گیم زد و خورذ در لغت فارسی اگر خود زرد باشه میزنن اگر نه مخب این هیئت رو معنای اول هم نداری تو زبان فارسی تو زبان فارسی معنای اول که لارب بود دارره معنا دوگم که این هیئت این هیئت رو بخوایم توصیف بکنیم. این میزنه اونم میزن این هیئت حرف دو میزنه ما الان در زمان فارسییه زد و پر این متعارب ما پس اساسی این فرق معوم مبدش هم بگم انصافه همطی زبان تیف موم محق جهانی در شرح قاعده لازرار برسه بحث زرار و مزاره به مناسبتی فرق بین با مفعاله و تفاعل رو ایشون در حاشه مبارکیشون اونجا آوردن و لطیفه این هم معنای بسیار لطیفی که این دو جور حکایته میگن هر دو بره طرف اما اگر گفت غاربه این معنام صدق میکنه که این زد تو گوشی اون بعد اون زد تو گوشی اما غاربه به این صدق نمیکنه تغاره در لغت هره وقتی که طرف همدیگر هم رو میزنه این بروی یا حالت دکت که این داره اونه میزنه اونم داره اینه میزنه اون حالتی که طرف این هم دیگه رو میزن پس این نکته رو در زبان در نظر این خیلی لطیفه این چرا من این نقطه گفتم تشابه یعنی چی و متشابه یعنی چی آیا تشابه یعنی کل و واحدی یوش و اگر این باشه این معناش اینه که اینو به ونای طرفینی ملاحظه کرده. این به اون آیه اون آیه یوش به این آیه. تشابه یعنی یعنی کلو واحده چه بده دیگری داره تشابه معنیش اینه و لذا اگر این شد این باید تو مجموعه ملاحظه بشه خوب دقت کنیم مثلا بگیم این خانه اجزایش متشابه هم یعنی حالش به اتاق میخوره اتاقش به حال میخوره به سرویس ترگیز میخوره سرویسش به آشپس خوده میخوره این معنی تشابه دقیق کنیم کنیم این معنای تشابه میاد یک همسانی و همگونی به یک مجموعه رو میبینه کتاب هم متشابه هم این چرا آمده توی خود کتاب این مجموعه رو دیده این کتاب همسانه این آیات با هم دیگه مثلا میگیم این خونه با هم میخورن با هم میخورن یعنی نه که مثلا میگیم این اتاق درست رو ده اتاق درست رو ده. این اتاق خراب درواده این حمام در خراب درواده. می در نه دست حمام نیست اصلا این خونه به هم نمیخوره ببینید اجزار رو با هم مقایسه می کنیمیم ما اگر باشیم تحمل فرید تشابه اگر ما باشیم معنای دومه یعنی یک مجموعه ای رو نگاه کرده کل واهده یا شبه آخر این شبیه اونه اون هم شبیه بینه. چون گاهی اوقات ما یک چیز واحد داریم شبیه اون جانه در لغت عرب تشابه میگن. اصلا شبه میگن تو نهجربل آقا هم داره؟ امام میفرماید شبه رو شبه میگن چون شبه حقه چون یک شباهتی هستی با حقه اصلا سر این که شبهه رو شبه میگن یه عرضی که باطل محضی باطل درکه یک شبه هستی هم به حق داره دردار شبه این رو ما در موقع عربی مشتبه میگیم یه شریعت شد مطبع ذکر بگیم خانه راه ما یعنی جا به جا شد ای دکتر از برای خواب اشتباهم این ما اشتباه میگیم مشتبه میگیم اما اگر این با اون شبیه شد اون بی این شدیه شد نه این که یکی فقط شد فقط ما باشیم مطبع قائده مشتبه و متشابه فرق میکنن شبهه با متشابه فرق میکنه شبه یک چیزه دقت بکنیم شبهه از حق توش هست نه این از حق شبه شبهه باطل هست از اون ورش نیست دیگه اما تشابه چون باقی تفاوله میدونید دقیق کردیم تشابه این طور میخوره معنای تشابه یعنی این شبیه اونه اون هم شبیه اینه این شبه. تعمل این شبه باید از دو ترس بیاد. پس بنابراین الان در کتاب و ما متشابه رو معنا کردن مجمد مجمد از یک ترسه دو طرف ترس نیست مثلا این کلام مجمده وقتی میگیم این کلام مجمله این رو با یکی دیگه و یکی با یکی قیاس نگردیم این کلام دی نفضه مجمده پس از حالا اون مسئله ای که بحث اینکه که معنای تشابه چیه متشابه نه بوشن شد ما یه مشکل دیگه هم داریم چرا در قرآن مادهیت تشابه به کار برده شده؟ اما الان ما وقتی در بحثای علمی کلمه متشابه رو به کار برده نه این شبهه یعنی مجمل مجمل جایی گفته روشه که یک دلیل رو یک مطلب رو فیلسه نگاه مرکنی میگه خوب میت مثلا ابحام داره اینو میگیم مجمل مجمل این نیست که این به سیاسته یکی یکی دیگه به سیاسته این اجمال نه این مجمل نیست پس متشابه مشابه از طرفین به خلاف شبهه به خلاف مشتبه به خلاف مجمل این یه نکته‌ایه که باید مرزاش بشه آیا این دو, دو که در قرآن آمده نزل افتان الحدیث کتابا متشابه هم کل کتاب رو متشابه قرار داده این شاید مراد این باشه که کل کتاب هر ای مشابه آیهی دیگه همسانی داره همخانی داره نه اینکه که هر آیهی فی نفسه متشابهه نه مجمله نه یعنی این کتاب جوریست که همه به هم میخورن مثل همون مثالی که حرف کردید یه لفه شما میگید این اتاق خرابه یه لفه این هیئت مجموعی به هم نمیخوره یه لفه شما این خونه هیئت مجموعیش قشنگه اتاقش جای خودشه سرویس جای خودشه اون حیعت یعنی هر کدام دون دو یک دیگه میخوره خود معماران همین صورت مثلا میگه ادر زمین شما بزرگه باید اتاق ها اینجور باشه اگه زمین شما کوچیکه، باید این یک ن خارجتون تا چه مقدار شما پنجره به خارج داریم باید اینجور باشه این مال تشابه همخانی همگونی همسانی آیا م... وقت از اون طرف ما الان وقتیم که متشابه یعنی مجبر اینجور با مشکلی که ما الان داریم این روشن شد که چرا در قرآن لفظ متشابه اینجا استعمال شده و آقایان و اصولی ها مفسریم و هر در روایت ما طور قاید زیاد بریم این نبی احادی سنا محکمن که محکمن قرآن موسیقی و این که موسیقی که مراد از متشابه در اینجا مجمل. در اینجا مراد مجمنه خود این چطور شده که لحظه تشابه امیدار برشن شد که قاعدتا مراد همخانی با همه خب اگر این مطلب ما ممکن اصلا تشتر اینجوری حل بکنید وقتی اوصاف کتاب به طور کلی گفته شده همه همخانی داره هم. این کتابند متشابهند مثانیه تخشه ارومنه و الاخره هایه این مراد اون همخانی کل کتابه اما اینجا که آمده به اخر متشابه ها مراد در اینجا شاید مشتبه باشه همینطور که الان در ذهن شما ساله اینطور بود دیگه متشابه مجمع متشابه این نبود چیه که آیه رو با آیه دیگه این شبیه اون اون شبیه این شبان گفتید این آیه متشابه یعنی این همسه حالا این رو چیجوری باید تحلیل تا... یعنی با استعمال قرآنی روشن کرد اصلا خدمتون این چه راهی داره به خاطر اینکه منحو و اخر آمده اینجور بگیریم یا به خاطر نقطه دیگه اصلا که از مشکلات این مطلب همینطور که الان از کردند اینجا که اگر ما باشیم و همین قوائدی که کردیم متشابه همینطوره این باب تفاوت داره. در قرآن کریم یک جا یک آیه هست که دو بار تکرار شده دو سوره و زیتون و رومان این از رومان اولی ما زیتون مذاکره نگاه کنند و زیتون و رومان مشابه و غیر متشابه این میده همین آیه به اینها و زیتون و رومان متشابهن و غیر متشابه مشتبهن و, مشتبه و غیر متشابه همین آیه به اینها اولی زیتون آقا اولی زیتون و زیتون و رومان چون من یادم می کنستم آیه مبارکه خدا نکره غلط تلفظ خود و زیتون و رومان, و زیتون و رومان... متشابه هم و غیر متشابه این یک دو، این استعمال باغ تکاول در بار هم استعمال اشتقاقی داره مثل, تشابه. مثل متشابه هم استعمال خیلی و هدفی داره. آلو البغل فشابه عل ها بهقدر بکنه؟ من که ثر مجموع مایه، حواسبای در به میزان زیاد درست این مطلب عکس درست بین معنای اشقاقی و حدسی فرقه ممکن است بگیم مثلا من میام میصرم ممکن است فلانی ماشین تا اینجا آورد ران تا اینجا اما راننده نیست ممکنه عنوان راننده یه خصوصیت بخواد اما ران در ماشین و آوردن چیز دیگه باشه یک روایت سابقا در بحث ادوی اجاره مغنیه خوندم در صحیح بخاری ده هم رسول الله و این جاریتان تغنیان ولی فتا به مهمیت مهمی نبودن اما که نامی خودن آوازه خان نبودن و این جاریتان تغنیان ولی فتا به مهمیت آوازه خان اما آواز خودن دقیق فرمونه آیا ممکنه که لحظه تشابه در خوب در اشتقاق حدثی در معنای حدثی غیر از معنای اشتقاقی باشه یعنی در معنای حدثی و فعلی ترتی نمیخواد یکی هم کافیه اما در معنای اشتقاقی متشابه اون دو تا نمیخواد دقیقاً چون فرمود ان البقر تشابه ها علینا خب معلوم گاب بشی دیگه که اونم بشی به این گابی که تو گفتی الان هیچ شما مشتبه معلوم نیست کدوم گاب. نه اینکه این گابی که تو گفتی به دیگه مشتبه هست. اون گاو هم به این مشتبه این ان البقر که فعلا اینجوری تلخاره شده نگفته ان البقر متشابهه گفتش ان البقر تشابه ها علینا انصافا من این احتمال رو قدی دیدم با اعتراضات عربی و خودم که باب در باب تفاؤل با اینکه باب شکیه ماهیت و ماده شکیه لكن اش... به اصطلاح معنای اشتباقی با معنای هدفی فرق می‌کنه اگر تشابه آورد عبر... دقت بکنید این تشابه به معنای اشتباه هم میاد اما متشابه آورد یعنی همسان همگون خوب دقت کردی و مشکل کجاست در اون آیه مبارکه کتابن متشابهن محامیه چیزی؟ تو این آیه واحده که بوسیم در قرآن یکی وقو خروم متشابه ها معنی اشتباهی اوورده برسان فا ام من فی قلوبه هم زیغون فی ما تشابه همه معنی حرفی اوورده به خیلی عجیبه نه نه احسن این زرافت نقصه دفر در جایی که معنای اشتباهی سمود و اخر و متشابه ها این مطلب که من خیلی و هیچ تفسیر هم نایدم به که نسبت این به ذهن و اخر و متشابه ها در از فهم فی غلوبه خیلی تبعون ما تشابه اینجا به سیخه خیلو بود مثل نالبقره تشبه و علی دار. و چون وحدت سیاه هست پس بعید نیست که در معنای اول هم مراد طرفیمی نیست فقط شبه تو کلام باشه و این همین از که علمهای اسلام ها اصلا توجه نکردن به این نقطه گفتن متشابه این مجمن طرفیمی نکردن پس در اونجا کتابن مکانی کل کتاب رو متشابه پرد کرده در اینجا بعض از آیات رو متشابه فرد کردیم اونجا مراد آیات بعضها شبیه بعض هم. اینجا مراد عدم ووضوح مراد باشه همون معنای تشابه مراد باشه نه معنای اشتغاقی دیگه وقتا همون تو برد